آفستانهای هزار و یک شب چون شب پنجم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبر حکایت ملک سندباد این است وزیر گفت چون است حکایت ملک باد؟ گفت شنیدم که ملکی از ملوک پارس همیشه به نخجی رفتی و تفرج دوست داشتی و شاهینی داشت که دست پربردگی خود بود و شب و روز آن را از خود دور نکردی و تا زرین از برای آن شاهین ساخت و در گردنش آویخته بود که هنگام تشنگی آب از آن تا میخورد روزی ملک شاهین به دست گرفته با غلامان به نخچیرگاه شد و دام بگستردن غزالی به دام افتاد ملک گفت هر کسی که غزال از پیش او شود بخواهم کشت سپاهیان به غزال گرد آمدند. غزال به سوی ملک بی آمد و از بالای سر ملک به غلامان به یکدیگر نگاه کردند. ملک با وزید گفت چه میگویند؟ گفت ای ملک تو گفته بودی که غزال از پیش هر کس به جهت او را اکنون اکتون غزال از پیش روی تو جسته. ملک گفت از پی غزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم. اس ملک از پی غزال به تاخت و شاهیم بر سر غذال نشست به چشمانش همیزد تا آنکه غزال کور گشت و قریختن نتوانست آنگاه ملک رسیده غزال را زفع کرد و از کش بیاویخت ولاکن بسیار تشنه شد به سایهٔ درختی آمده دید که آبی قطره قطره از درخت همیشه کرد تاس را از گردن شاهیم بگره پر از آب کرده خاست بخورد. شاهین پری بر تاسک زده و آب ریخ. ملک دوباره تاس پر از آب کرد. چنان یافت که شاهین تشنه است. آب به پیش شاهین گذاشت. شاهین پر بر تاسک زده آب بریخت. ملک باز آن را پر از آب کرده به پیش اسب گذاشت. شاهین پر زده آب بریخت. ملک در خشم شد و گفت نه خود آب کردی و نه منو نه عصر را گذاشتی که آب بخورد پس تیغ برکشیده پرهای شاهین را بیندار شاهین به اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کن ملک به فراز درخت نگاه کرد ماری دید که زهر آن مار قطره قطر می چکر. آنگاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان گشته و شاهین به دست گرفته به مقر خود بازگشت غذال را به خانسالار سپرده خود بر تخت نشست و شاهین در دست داشت پس شاهین فریادی به بمورد ملک پشیمان و محسون شد چون ملک یونان حکایت در این رسانید وزیر گفت ای ملک اگر نصیحت بپذیری برهی وگرنه هلاک شوی چنانچه وزیر به پسر پادشاه هیدت کرده خود هلاک شد ملک گفت کدام است آن حکایت وزیر گفت شنیدم که ملکی از ملوک پسری داشت پسر خاص که به نخچیر شود ملک وزیر را با او بفرستاد ایشان شکار همین کردند تا اینکه به غزالی برسیدند. وزیر گفت این غزال را بگیر ملک زاده در بیابان بهیرت اندر بود و نمی دانست کجا رو و دختری بدید گریان با او گفت کیستی و از بهر چه گریانی دختر گفت من دختر ملک هند بودم سوار گشته به نخچیر شدم مرا خواب در رو بود. از به زیر افتادم و راه به جایی ندانستند ملک ساده به دور رحمت آورد و او را برداشته به خانی زین گذاشت و همی رفت تا به ای برسید دختر از ملک ساده درخواست کرد که او را از زین فرود آورد چون فرود آورد دید که غولیست بدشکل و مهیب و فرزندان خود را پیش خود می و می گوید که آدم فربه از بحر خوردن آوردن. ملک ساده چون این بشنید دل به مرگ نهاد و از بیم جان بر خود بلرزید. حول گفت چرا ترسانی؟ آخر نتو ملک ای؟ چرا به مال پدر از چنگ دشمن به در نمی ملک ساده گفت دشمن من از من جان همی خواهد نظر. بول گفت چرا پناه از خدا نمیخواهید؟ ملکزاده زاده به آسمان کرده گفت «امن من یجیب مستر ازاد آه، و اسرفه هو انی انک علا ماتشا اول چون این بشنید از ملکزاده به کناری رفت ملکزاده به پیش پدر باز گشت و حدیث وزیر با پدر بیان کرد تو تونیزه ای ملک به گفته حکیم رویان دل بنهی در کشتنتو ددویری کند و به زودی کشته شوی چنان که در بهبودی تو تدویر کرد و چوگانی به دست تو داده، تو را از برس خلاص نمود. ملک اونان گفت، راستی گفتی که او چنان که به آسانی مرا از برس خلاص کرد، تواند که دست گلی به من دهد که منان را بوییده حلاق شوم اکنون بازگوی که رعی سواب کدام است. وزیر گفت، او را بکشو، از شر او به راحت اندر باش و پیش از آن که او با تو حیله کند، حیلت بر او تمام کن. در حال ملکیونان یونان حکیم رویان را بخواست. حکیم رویان حاضر آمد و آستان ملک را داد و گفت خدایگان جهانا، خدای یار تو باد. سعادت ابدی، جفت روزگار تو باد. به هر کجا که زنی تیغ، دست دست تو باد. به هر کجا که نهی پای، کار کار تو باد. و باد برخان، فرخ کن بر همه شاهان که تو را شاید فخر. ناز کن بر همه میران که تو را زیبت ناز. گوی فتح و زفر اندرخم چوگان تو باد. چون دل محمود اندرخم زلفین ایاز. و باز گفت، اندیشه به رفتن سمندت مولد. آتش به سناون بی بندت ماند، خورشید به همت بلندت ماند، پیچیدن افعی به کمندت ماند پس چون حکیم رویان ابیات به انجام رسانید ملک گفت دانی که از بحر چه چهخواستمد حکیم گفت لا یعلم الغیب الا الله ملک گفت ترا از بهره کشتن آوردم. حکیم از این سخن در عجب شد و پیران مانده گفت به کدام گناه مرا خواهی کشت؟ ملک گفت تو جاسوسی و به قصد کشتن من آمده ای پیش از آنکه که تو مرا بکشی من تو را بکشم انگاه ملک سیاف خواست و به کشتن حکیم اشارت فرمود حکیم گفت مرا مکش که خدا تو را نکشد ملک گفت تا تو را نکشم ای من نتوانم زیست و همی ترسم که با اندک چیزی مرا بکشی. چنانکه که چوگان به دست من داده مرا از برست خلاص کردی اکین گفت ای ملک پاداش نیپوی من نینست ملک گفت ناچار باید کشته شدی اکین رویان حلا که خیشتن یقین کرده محزون شد و بگریست و از نیپوی ها که با ملک کرده بود پشیمان گشت و گفت قهده و فاس در پنه آخر زمان هاونه اکین پرده ازلت به ساز خان. تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو فرزانه خفته و سگ دیوان پاسپان آنگاه سیاف پیش رفت شمشیر برکشید و کشتن را دستوری خواست اکیم رویان گریست و با ملک گفت ای بر سر خلق سایه عدل خدا بر من مسکین بخشاید پس از آن بگریست و گفت ای ملک پاداش من نیم بود تو مرا پاداش همیدهی چنانکه نهنگ صیاد را ملک گفت چونه است حکایت نهنگ با صیاد اکیم گفت ای ملک در زیر تیغ چگونه توانم هریس گفتم تو از من درگذر و به غریبی من ببخشا که و تعالی بخشندگان ببخشاید پس هنگام یکی از خادمان پاوگهی سریر ملک را بوسه داده گفت ای ملک از او درگذر که ما گناهی از او ندیده ایم ملک گفت اگر من او را نکشم خود کشته شوم از آنکه کسی که تواند چوگانی به دست من داده از ناخوشی برس نجاتم دهد این نیز میتواند که دست گلی به من دهد که من او را بوییده هلاک شوم مرا گمانین است که او جاسوسی است که به قصد کشتن من آمده ناچار او را باید کشت چون حکیم دانست که ناچار کشته خواهد شد گفت ای ملک اکنون که به کشتن ما آستیم برزدی، مرا دستوریده که به خانهٔ خیش روم و وسیعیت بگذارم و مرا کتابی است برگزیده او را آورده بر تو هدیه کنم ملک گفت چگونه کتابی است حکیم گفت آن کتاب سودهای بسیار دارد کمتر سودش این است که پس از آنکه سر بریده شود ملک آن کتاب را بگشاید و از صفهی دست چپ سه سطر بخواند، آنگاه سر من در سخن آید و آنچه را ملک سؤال کند پاسخ دهد ملک را از این سخن عجب آمد و حکیم را به پاسبان سپرده جواز رفتنش داد حکیم به خانی خیش رفته دو روز در خانه همی بود روز سی یوم در پیشگاه ملک حاضر گشت کتابی کهن با مکهلهی در دست داشت. طبق خواست از آن مکهله اندکی دارو به طبق فرو ریخت و گفت ای ملک این کتاب بگیر. چون سر مرا ببرند به که در همین طبق نهاده بدن دارو بیالایند که خونش باز ایستد. آنگاه کتاب گوشوده به دانسان که گفتم سه سطر بخوان و از سر من آنچه خواهی سوال کن. ملک کتاب است خواست که آنرا بگشاید ورقهای کتاب را به هم پیوسته یافت انگشت به آب به دهن تر کرده فرقی چند بگشود و به آسانی گشوده نمیشد چون شش ورق گشود به کتاب اندر خطی نیافت گفت ای حکیم خطی در کتاب ندیدم حکیم گفت فرقی چند نیز بگردان ملک اورا همی گشود تا اینکه زهری که حکیم در کتاب کار برده بود بر ملک کارگر آمد و فریادی بلند برآورد حکیم رویان چون حالت ملک بدید گفت ای ملک نگفتمد هزار کنز دود درونهای ریش که ریش درون عاقبت سرکند به هم بر مکن تا توانی دلی که آهی جهانی به هم برکند هنوز حکیم عبیات بنجاب نرسانیده بود که ملک درگذشت چون سیاد سخن به این جارسانید گفت ای افرید. بدان که اگر ملکی اونان قصد کشتن حکیم رویان نمیکرد، خدا و تعالی او را نمی تو نیز ای افریت اگر نمی که مرا و کشی خدا و تعالی چون قصه به دینجا رسید، بام شد و شهرزاد لب از داستان رو بست چون شب ششم برآمد، شهرزاد گفت ای ملک جوان بر. سیاد با افرید گفت که چون تو قصد کشتن من کرده بودی، اکنون من تو را در این رویین خمره به زندانندر کنم و به دریا بیفکنم. افرید چون این بشنید فریاد برآورده بنالید و سیاد را به نام بزرگ خدا سوگند داد و گفت تو بد کرداری مرا پاداش بد مده و چنان مکن که امامه با آتکه کرد سیاد گفت چگونه بوده است تکایت ایشان افرید گفت من چون توانم که به زندانم در هدیث کنم اگر مرا بیرون بیاوری حکایت بازگویم سیاه گفت ناچار تو را به دریا افکنم کنم که دیگر راه بیرون شدن ندانی من پیش تو بسی بناولیدم و زاری کردم تو بر من رحمت نیاوردی همی خواستی که هم بکشی و پاداش این که من تو را از زندان به در آوردم تو در حال که من همی کوشیدی اکنون بدان که تو را بدین دریا و در و بدین جا خانه کنم و همه کس را از کردار بعد تو بیاگاهانم و نگذارم که دیگر کس تو را بدر آورد که تو را تا ابد در همینجا منزل باشد و گونه گونه رنج ها ببری. افرید که اکنون وقت جوان مردی و مروت است. مرا رها کن. من نیز با تو پیمان بربندم که هرگز با تو بدی نکنم و تو را از مردم بینیاز گردانم. تسیاد از افرید پیمان میگرفت و به نام بزرگ خدا و سرگندش داده مهر از سر رویین خمره برداشت. در حال دودی از خمره بیرون آمده بر آسمان رفت. پس از آن دود در یک جا جمع آمده افرید شد. زیشت منظر و پا به رویین خمره بزد و او را به دریا اندا چون سیاد دید که افرید خمره به دریا افکند مرگ را آماده گشته با خود گفت که این علامت نیک نبود. پس از آن افریت پیش بیامد و گفت ای امیر افریطان تو پیمان بستی و سوگند یاد کردی که با من بدی نکنی که خدا تعالا پاداش بدهد آنگاه افریط بخندید و گفت ای صیاد از پی من بیا و صیاد دل به مرگ نهاده همی رفت تا به کوهی برسیدند به فراز کوه بر شده از آنجا به بیابان فرود آمدند و در آن بیابان برکه آبی بود افید فران برکه بیستاد و سیاد را گفت دام به این برکه بینداز و ماهیان بگیر سیاد دید که در برکه اون سرخ و سفید و زرد و کبود هستند او را عجب آمد و دام به برکه بینداز پس از زمانی دام بیرون آورد چهار ماهی به چهار رنگ در دامیان پس افید او گفت که ماهیان را به نزد سلطان ببرد که تو را به نیاستازد و اگر گناهی از من رست به بخشای و عذر مرا بپذیر پذیر که من هزار و هشت سال به دریا و اندر بودم و روی زمین را ندیدن تو همه روز از این برکه که یک دفعه ماهی بگیر و سلام پس زمین شکافته شد و افریت به زمین فرو رفت و سیاد به شهر آمد و از سرگذشت خود با افریت در عجب بود پس به خانه بیامد. آمد زرفی پر از آب کرده ماهیان دران بیانداخت و آن را چنان که افریت آموخته بود برداشته به بارگاه ملک آمد و ماهیان را به پیشگاه ملک بود ملک چون به ماهیان ندیده بود و از آن ماهیان در عجب مانده گفت این ماهیان به کنیز تباق به سفاری با آن کنیز را سه روز پیش ملک روم به هدیه فرستاده و هنوز چیزی نپخته بود. چون ماهیان به کنیز سپردن وزیر به فرمان ملک چهارصد دینار زر به سیاد بداد. سیاد زرها به دامن کرده شادان و خرم به خانه خیش بازگشت. اما کنیز تباق ماهیان را به تابه انداخته بر آتش بگذاشت تا یک سوی آنها سرخ گردید و آتشت قرزیر تا به همین سوزان که دید دیوار مطبخ شکافته شد و دختری محروض به مطبخ در آمد که در کوبی چنان بود که شاعر گفته شاه را ماند که اندر صدره دیبا بود هر که اندر صدره دیبا بود زیبا بود آشقان را دل به دام انبرین کرده سید سید دل باید چو دام از انبر سا را بود هست دریا یه ملاحت یه روی او از بهر آنک، انبر و مجان و لولو لو عرصه در دریا بود گر به حکم حفظ یغما رست باشد ترک را آن ترک است و دل در دست او یغما بود و در دست آن دختر شاخه خیزرانی بود آن شاخه را باستا و بزد و گفت ای ماهی آیا در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ چون تباخ این بدید بیهوش افتاد و دختر همان سخن هم مکردر می کرد تا اینکه ماهی سر گفت آری آری پس از آن همه ماهیان سر برداشته گفتند اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنی ذمه را دوستی دیگران کراو نکنی دخترک چون این بشنید تا به را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود به در شد و شکاف دیوار به همهید چون کنیز به آمد دید که ماهیان سوخته و تباه شدن کنیز ملول نشسته به وقت خیشتن گریان بود و می گفت در جنگ نخوست مبارک نباشد کنیز با خود گفته بو همی کرد که وزیر در رسید و ماهیان بخواست کنیز گریان شد و چه با وزیر را عجب آمد و سیاد را بخواست و گفت از آن ماهیان چهار دیگر بیاورد. سیاد به سوی برکش دافت و دام بینداخت. پس از زمانی دام بیرون کشید. دید که چار ماهی مانند همان ماهیان به درند. ماهیان را پیش وزیر آورد. وزیر آنها را به کنیزک بداد. کنیز ماهیان به مطبخ آورده به تابه بینداخت در حال دیوار مطبخ شکافته همان دختر آفتاب روی به مطبخ اندر آمد و شاخه خیزران بر تابه زد و گفت ای ماهی در عهد قدیم و پیمان درست هستی؟ ماهیان سر برداشتند و همان بیت پیشین بخاندند چون قصه به دینجا رسید خامداد شد و شهرزاد لب از داستان Rubem